بسیار عالی بود نیستی ستا جان واقعا محشر کردی از دوستان عزیزمون باید تشکر بکنیم که همکاری کردن آقای محمد ایداری آقای بیجن متزفی آقای پرویز رحمان پنا، آقای علی تبلدی که با قایده عزیزمون و ستار عزیزمون همکاری کردن ولی برای یه حسن ختام برنامه من فکر کنم یکی از نه حسن ختامی بستمه ساعت سفن را بر سر زدگاه ما از خدا یکی از آثار تجویبی رو من شدیدم از که هایدوجون. رفتم که رفتم میسین برای آخر نه؟ رفتم